فرهنگ ایران با پخش حکومت بین مردم کار دارد حکومت تا بین مردم پخش نشده است داد نیست این اصل جمهوری است داد تنها پخش عادلانه رفاه و شادی و امکانات و آزادی در اجتماع نیست. داد تنها پخش عادلانه رفاه و شادی و امکانات و آزادی در اجتماع نیست. بلکه داد با پخش حکومت در میان مردم بنیاد گذارده می شود. این اندیشه بنیادی فرهنگ ایران است. اینکه بهمن خرد سامنده و آراینده یعنی چی؟ یعنی خرد اداره کننده گیتی در همه مردمان هست به معنای آن است که حکومت بین مردم پخش می شود و همه سهمی در حکومت کردن دارن نه سهمی در حکومت شدن در تابعیت نه سهمی در حکومتگری دارم در همه مردمان اصل حکومتگری و اداره کردن گیتی و سامان دادن اجتماع به وضع قانون و گزاردن ارزش پخش شده است اصلا بهمن اسم یکی از نامهای بهمن آسنبغ است بقیه چیز ترجمه شاید به خدا نه بقیه همون واژه هست که بعدش پخش شده است بخ بخش بخشید پخشیدن شده است. خدا بهمن یعنی خرد بنیادی در پرهنگ ایران پخش می شود یعنی خودش پخش می شود بهمه سیمور که ارتا باشد پخش می شود اصلا یعنی چی؟ ارتا خشتره یعنی حکومت ادالت پخش می شود خشتره شهر ارتاست ارتا چی خوش پخش می شود. همه بدون استثنا در گوهر خود خرد بهمنی پیشخرد خرد سامانده خرد, خرد ادار کننده اجتماع خرد مبدع و نوآور را دارند این فرق دارد با ایده صغیر بودن و نیاد به قیم بودن قیم داشتن این فرق دارد نیاد به رهبر داشتن و پیشوا داشتن پس داد با همون پخش اصل و نیروی حکومت در همه آغاز می شود خشتره حکومت خشترات در, م... در پرهنگ ایران چنین معنای داشته است ولو در تاریخ اجرا نشده باشد اما این اندیشه را مردم داشتن حکومت مانند خرد بهمنی در همه ملت پخش شده است خیش خویشکاری این خلط هست که همه ملت را مانند یک تن به هم پیوند دهد این خرط باید بسیج باشد اگر بسیج نباشد این اعذا بیمار میشود سست میشود از هم پاره میشود پخش شدن حکومت در همه ملت است که داد و مهر را با هم سازگار و هماهنگ میسازد خشانی تاریک ساختن یا به کنار روندن این خرد بهمنی در همه ملت علت پیدایش تضاد داد و مهر می شود این سغیر سازی ملت این جاهل سازی مداوم ملت این گناهکار سازی و مقصر سازی همه ملت اینها خرد بهمنی را به کنار میزنن میپوشانن سرکوب میکنن ولی گیر افتادن در این تضاد و حساس شدن در این بون بسته از داد خرد بهمنی را در هر انسانی اثر سر برمی وگرنه ادامه این تضاد به همون فاجعه میرسد که پریدون رسید و به جای ایجاد داد در جهان او ایجاد و جاد در ایران نمیخواست بکنه. او در همه دنیا میخواست ایجاد و داد بکنه. یعنی همه در همه دنیا بایستی از رفاه و آزادی و شادی و امکانات امکانات برخوردار باشند. بحث یک ناسیونالیست ایرانی نبود ایده فریدون اید شاه هفت کشور است میخواهد داد را در دنیا پیاده کند این است که زمین دنیا را بین سه پسرش تقسیم میکند مسئله داد مسئله حکومت بین‌الملل است به جای ایجاد داد میان سه پراه سه پسرانش که سه ملت جهان باشند در پایان سر بریده آنها را در هنگام مرگ در چشم پیش خود دارد پیوندادن ازداد برابری و آزادی یا از ازداد مهر در جهان به چی رسیده است؟ به فاجعه رسیده است. و این فاجعه را فقط با بسی سادنه وسی ساختن خرد بهمنی همه انسان ها می توان اثر آشتی داد و از سر حل کرد. پیوند دادن از دوجدد با هم کاریست کارستان که به آسانی نمی توان از عاخی آن برآمد. شما مسئله برابری و آزادی رو می در اروپا این تضاد و کشمکش بین لیبرالیسم و سوسیالیسم همیشه برقرار است تضاد بین داد و مهر همیشه برقرار است پیوند دادن دو با هم کاری کارستان که به آسانی نمیتون از عهده آن برآمد. در الهیات زرتشتی یعنی گزام شناسی نیست مفهوم داد روشن است روشن بودن یعنی چی چون داد ببینید داد را این نمی جوید داد روشن هست داد برای الهیات زردوشتی پیروی کردن از فرمان و خاص اهورامزاست و دیگر نیاز به اندیشیدن انسان درباره اینکه داد چیست نمی باشد بلکه نیاز به متخصص و خبره در فرمانهای اهورامزاست که همون موبد یا آخونده امروزش روشن شدن بانور که محور این ادیان ابراهیمی و دین زردشتی است ارزشها را بر همین پایه ایمان به اولویت خاص اله، خاص اهورامزا ترتیب میدهد و منظم می‌کند. و طبعا خرد انسان از این پس هیچ نیازی به اندیشیدن بنیادی ندارد و هیچگاه در انتخاب میان عرضش ها داد و مهر دوتا ارزش بودن آزادی و برابری دوتا عرضش هندی. هیچگاه در انتخاب میان ارزشها، ها گرفتار بحران و تزلدر و طوفان نمی شود و دردسر اندیشیدن ندارد همینگونه مسئله مهر در الهیات زردشتی سلسله مراتب پیدا کرده و روشن شده بود و امکان پیدایش تراژدی و امکان پیدایش جنبش در خرد انسانی به کلی از بین رفته بود همچنین در مقوله مهر تضاد مسئله ایمان و مهر که مسئله ادیان نوریز که داستان ابراهیم و اسحاق در تورات و انجیل چه داستان ابراهیم و اسماعیل در قرآن تضاد مسئله ایمان و مهر که مسئله عدیان نوریست با این کار برطرف می شود در پرهنگ ایران گوهر دین مهر است همین سوال شد که عرفای ایرانی در آثارشان اشعارشان ایمان به دین را این همانی با عشق میدادند و ایمان را در راستای اسلام نمی شناختند. این که بعضی ها ایمان را عشق می دانند این به کلی مشتبه سازی مغولات هست ایمان و عشق دو مغوله جداگانه از هم هستند در عشق ایمان تابع است در ایمان ایمان حاکم بر است. مشخص می کند که آدم کی رو باید دوست دارد و کی رو نباید در عشق اولویت با عشق است ایمان نمیتواند من را باز دارد که من با فلانی ازدواج میکنم یا با قرانی دست, دست می دهم ده دوستی میکنم اینها اولویت عشق است که مسئله عشق را مشخص می سازد وگرنه با هم مخلوط کردن ایمان و عشق این سبسته است که خیلی ها خیلی از روشن پکران دینی به کار در فرهنگ ایران مهر تیف رنگارنگ همه مهرها بود و مجموعه آمیخته همه مهرها با هم همون خدا یا میترا یا سیمونق یا خرم بود خدای مهر جمع همه مهرها بود یک مهر خاصی فقط خدا نبود از مهر جنسی گرفته تا مهر بین پدر و مادر تا مهر اجتماعی تا مهر به ملت تا مهر به جهان اینها همه کیف مهر بودند. چیزی متضاد با مهر به خدا متضاد با مهر به پسر نبود با بودن مهر نیازی به مقوله ایمان نبود. دین در, پر... در پرهنگ ایران نیاز به ایمان ندارد. چون خودش مهر یا اصل هم بسید. یزدان شناسی با پیروی از آئین میترایی در مهر نیز سلسله مراتب وارد کرد. خیلی چیز خوشمز است. تا مهر نیز کاملا روشن گردد ببینید اینها مجبورن برای تا اینی که مانه اون تضاد درک تضاد اردش ها بشرن. در مهر هم روش... مهر را رو هم روشن کرد باید روشن بکند که چل, چل مراتب مهر چی هست تا انسان در مهر وردگدن نیز روشن باشد و بداند که به هر چیزی باید چقدر مهر ببرد ببینید باز اینجا مهر را تابع ایمان میکند تا هیچ گونه تنش و کشمکشی در مهروردی هایش هم نداشته باشد در میترایشت این مراتب مهر حتی فرمول عددی پیدا کرده است و ریاضیات مهرورزی جر شده است در مهریشت، با برابر نهادن هر مهری با عددی سلسله مراتب مهرورزی را دقیقا و با حد اکثر روشنی تعیین کرده است. چه مهر میان دو همسر باید 20 باشد. حالا شما این را دقیقا در نظر بگیرید که چه مسائلی با این ایجاد می‌شود. میان مهر میان دو همکار سی عدد 6، میان دو خیشاوند چهل میان دو همسایه پنجا میان دو اتروان شست میان شاگرد آموزگار هفتاد میان داماد و پدرزن هشتاد میان دو برادر نود میان پدر, پدر, مادر پدر و مادر با پسر صد. میان ببینید خیلی خوشمزه است میان پدر و مادر با دختر را نه اصلا ذکر نمی میان مردم دو کشور هزار میان پیروان دین مزی ده هزار همین جدول و تناصب یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پای مهر میان مؤمنان به دین در دوستیگری در بیان آمد مهر میان دو کشور را ایران و مثلا عرب را ایران و ترک را باید پراموش کرد. یا مهر میان پدر و مادر را وقتی مهر به میاد باید این را پراموش کرد. مهر میان دو همسر را باید پراموش کن ببینید این یعنی بی ارزش ساختن با مهر میان پیروان دین مزیسنا تمام ارزش های پیشی همه ناچیز میشون چون این ده هزار مثلا مهر میان دو همسر بیست است البته نکته مثبتی که در این بررسی ما لازم داریم آن است که دیده می شود به رقم همه تحریفات مهر تنها به معنای عشق و محبت نیست بلکه به معنای همبستگی اجتماعی و سیاسی نیست این نکته را البته در این جا کشف کنیم جالب آن است که از مهرورزی مردمان به هم در دو کشور به مهربانی میان پیروان دو جامعه دینی نمی رود خوب توجه بشود بلکه به مهربانی میان مؤمنان به دین می میرود و راستای اصلی اندیشه مهر را رها میکند ولی از همین تحریف نیز دیده میشود که مهر را با ایمان یکی گرفته و ایمان را جلوه مقوله مهر آورده است ولی این گونه مهر یعنی ایمان رو برترین نوع مهر ساخته است این از ملحقات الهیات زردشتی است که درجه مهر میان مؤمنان به دین زردوشتی رو ده هزار ساخته است به عبارت دیگر مهر به دین ده برابر ارزش مهر به وطن و به ایران شده است این اندیشه ها بوده است در دوره ساسانیان در کشور چیره بوده است اینها مقدمات شکست ایران را از اعراب و اسلام پراهم آرده است اون مهر معنای اصلیش را به کلی از دست داده است در اثر این روشنسازی ها و در این سلسل, سلسل, سلسل مراتب درست کردن برای مهر به کلی اندیکشه مهر از بین رفته است تا این ابکار تزلزل پیدا نکرده است که چنین شکست روی نمیدهد این از ملحقات الهیات زردوستیست که درجه مهر میان مؤمنان به دین را ده هزار ساخته هست. به عبارت دیگر مهر به دین ده برابر ارزش مهر به وطن شده است داخته شده است ولی میان این مهرها تفاوت کیفیتی قائل نیست بلکه فقط با هم از دید کمیت اختلاف دارند مهر جنسی که در این جدول کمترین ارزش را دارد هم کوهر دینی است که برترین ارزش را دارد اگر از این ابدولهای الهیات زردشتی بگذریم دیده می‌شود که مهر میان دو ملت را برترین مهر می‌دانستان این در داستان ایرج درست همین اندیشه پیدا می شود که دیده می‌شود که کلی با اندیشه‌ای که در یادون شناسی زردچی چیره بوده از سر است یعنی این فرهنگ ارتایی فرهنگی رو که کوروش بر پایه اون, اون منشورش را رو درست کرد این فرهنگ ارتایی بوده است این همون اندیشه است که در ایرج شکل به خود می گیرد و نمودار می گردد که مهر بین الملل این در داستان ایرج ایراج کیش اراز ایراج یکی از پیکر های خدای ایران ارتا است سیمرغ است که در این شاهنامه اسم ایراج پیدا کرده هست. این ایراج این خیلی مهم است اولین شاه ایران در داستان ایراج است، ناخورس این ایراج است که آرمان ایرانی از حکومت رو معین می سازد نه کروش امروزه همه چسبیدن به, تا... به پیکره تاریخی کوروش و اصل ایده محتویات ایده را پراموش کردن با اون دو جمله ای را که محتویات فکری فرهنگ ایران در سیاست و اجتماع معینه می شود که ارتا باشد همبستگی به ترک و چین و رومی و یونانی یعنی ملل جهان و روز را برترین مهر میتوند از مهر حاضر است که از قدرت بگذارد و این مهر را از همه مهرها برتر میشنست ببینید حالا ما این را گذاشتیم فقط چسبیده این به کوروش اونچه در این جدول مهر ها نیست، مهر میان و شاه و ملت است. این جلز است. اصلا هایی که این میترایشت را دستگاری کردن، به فکر این نکته نیوب دادن. با کم ارزش شمردن مهر میان و زن و شوهر، مهر جنسی را بسیار ناچیز و خار شمرده است که بر ضد فرهنگ اصیل ایران بوده است. همچنین مهر مادر و پدر به پسر را اجزاده است و نامی از مهر به دختر نبرده است میبینید اینها تفکرات آخندی برای پی... حتی انقدر مفهوم مهر را دستکاری میکنند که از مهر هیچ واقعی نمیماند و از فرهنگ اصیل ایران بسیار دور افتاده است چون که در فرهنگ ایران مهر و جمع و یما اصلا با هم جفت هستند از هم نابیدنی هستند به اندازه همان در این جدول دیده می شود که نامی از مهر میان انسان و خدا هم برده نشده است. چرا به علت آنکه مهر به خدا در پرهنگ ارتایی مهر به همه گیتی و همه جانداران و انسانهاست، یک مهر به خدا یک مهر ابسترکت انتظای تجریدی نیست بلکه انسان در مهر وردیدن به سراسر جهان جان مهر به خدا میبرسد مهر وردیدن به خدا یک عمل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است یعنی پرستاری کردن پرستیدن معنی پرستاری کردن دارد نه به معنای تجلیل و تعظیم و سجده کردن مهر به خدا یعنی همه گیتی را دوست داشتن همه مردمان همه جانوران اینها را دوست داشتن این ام ام ام ام ام ام ام ام نیست که کسی پر مسجد و آتش کده فقط به آسمان نگاه بکنن نه این مهر به خدا یک عمل سیاسی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعیش این در مسجد و در به خدا در آسمان ربطی نداره. مهره به زن مهره به کودک مهره به خانواده مهره به اجتماع مهره به طبقات مهره به نجادها تمام اینها مهره به خدا و خدا چیزی فراتوی اینها نیست این به معنای تشبیهی نیست بلکه خدا مجموعه همه جان, ها، جان هاست مقصود از این بررسی کوتاه این بود که یه از آن شناسی زردشتی کوچیده است که اصل نور را در درجه مهرها و در سلسله مراتب به آنها دادن روشن سازد مسئله من از این آوردن این نمونه برای این خاطر بود که این روشن سازی که پاره پاره کردن هست مهر برزد پاره پاره کردن هست. درست این کار را می کند یعنی این مهر را در مهر فران 20، تا مهر فران 30، تا این همه از هم در روشند کردن پاره می شود این درست برزد خرد بحمنی است که جروتر بحث آن را کردیم خرد بحمنی در مشخص کردن از هم پاره نمی کنند. پس این اراحیات زردوشتی کوشیده است که اصل نور را در درجه بندی مهرها در سلسله مراتب دادن به آنها و عربی ارزش کردن اونهایی که کمتر ارزش دارند روشن سازد. تا هیچ گونه کشی میان مهرها نیز ایجاد نگرداد. در این صورت خرد خرد بهمنی میان دو ارزش از هم جدا ناپذیر تاب نمیخورد. این بود که در دین زرتشتی تراژدی های پیش از زردوش همه بی معنا و نامفهوم شدن این است که دا خیلی از داستان شاهنامه تراژدی هست بودن. ولی همه اینها را در جل توجهات موبدان و وارد تنفیز ایده های همه فاقد تراژدی در واقع دیگر خرد در میان تضاد ارزش های زندگی قرار نمی گرفت. که دوچار بنبست و دوچار بحران و درد شود تراجدی اندیشیدن درد است ولی خرد انسان در این بنبست های وجود و اجتماع و تاریخ است که به خود می آید و مستقل می شود و گشایندی راه نومی گردد برای خاطر اینکه ببینید این تضاد میان داد و مهر که در اجتماع بود و در دوره ساسانیان به کلی نادیدی گرفته می شود می بینید در شاهنامه به راحتی می تواندید و اون موقعی که شاهان اون سخنرانی اولشان را می کنند و به ملت اندارد می دهند در طورتی که سخنرانی اول معنای پیمان بستن با ملت را داشت در این سخنرانی ها همه همیشه ادعا می کنند که اونها مهروداد را اجرا می کنند و این مهرداد برای این شاهان تاتانی هیچ گونه مفهوم تضاد ندارد بلکه مثل نقل و نبات کنار هم است چونکه این تضاد در مقوله مهرداد از در تفکر زردشتی وجود نداشته است و این اینها همه این ترتیب دادن این تابع یکی تابع دیگری شدن به کلی این تدریج بود داشتن به کلی ایده تضاد ارزش‌های داد و مهر را از بین برده است